بخش اول این آخرین باری بود که او را دیدم دیگر هرگز ندیدمش صبح روز بعد به خانه سرتیب آرام رئیس کل شهربانی تلفن زدم و او را به شام دعوت کردم با کمال خوشحالی خواهش مرا پذیرفت آقای نازم مطلبی رو که الان میخواهم به شما بگویم بزرگترین راز زندگی من است هیچ کس از آن خبر ندارد هیچ کس نباید از آن با خبر شود. من دانسته و فهمیده خود را به گرداب بلا پرتاب کردم. که خود را روشن و آشکار می دیدم. اما هراس و ای به خود راه ندادم. حالا شما کم کم می فهمید که چرا من خود را به شما معرفی نمی کنم. به همین جهت که تصمیم دارم این بزرگترین سر زندگی من زیر سرپوش خاموشی برای همیشه پنهان بماند. اگر حرفش را نزنم دیگر ارزشی نخواهد داشت. آن وقت آنچه به خود من دلداری میدهد آنچه مرا در ساعت بی کسی و پر از دلها را آرام می کند، آن هم دیگر از میان میرود و یک زجر کوبند دل مرا لهو لورده خواهد کرد. آه، اگر من جرأت داشتم این راست را به او بگویم، شاید او هم خوش وقت می شود. اما من می که او چقدر گذشت دارد و تا چه اندازه میتواند در مقابل محرومیت های زندگی مقاومت کند اگر او از فداکاری من با خبر میشد شاید این تابلو را نمی کشید اما زجری که او تحمل میکرد مرا بیشتر شکنجه میداد چرا حالا دارم به شما میگویم خودم هم نمیدانم شاید برای اینکه عقدی که در دلم نشسته دارد نفس مرا بند می آورد خالی کنم اگر او میدانست که من چگونه فدای او شدم حتما این پرده را با این چشم های هرزه نمیکشید. میکشید. برعکس او خیال میکرد که من در دشوارترین ساعات زندگی ترک او را گفتم و او را به دست سرنوشت شومش سپردم آشنای من با سرتیب آرام از نخستین روز ورود من به پاریس آغاز شد به محض اینکه ترن در ایستگاه شتله نگهداشت، داشت دیدم مرد خوشیکر شیک پوش سفید پوستی که فقط موهای سیاهو ابروهای پرپشتش او را از فرانسویان متمایز میکرد به طرف من آمد و اسم شخصی مرا صدا زد و گرم و مهربان دست مرا فشار داد و چمدان مرا به باربری که آنجا منتظر بود داد و به هتلی که در آن قبلا برایم اتاق سفارش داده بود برد از همان روزهای اول دوستی و صمیمیت ما گل کرد و من برای هر کاری بیرو در به او رجوع می کردم. و او بیریا بیش از آن حدی که تقاضای یک پیرمرد خانواده درباره کمک به دخترش در یک شهر غریب ایجاب می کرد به من مهربانی میکرد. او در آن ایام از طرف وزارت جنگ مأمور سرپرستی دانشجویان نظامی بود. در عین حال به اسم انگوشنگاری و امور پلیسی حقوقی هم از دولت می گرفت. در آن زمان نایه به سرهنگ بود. اما حرفش در سفارت و در میان ایرانیان و وزارت جنگ فرانسه و وزارت فرهنگ کشور، در محافلی که با امور معسلین ایرانی تماس بی تاثیر نبود در کلیه ای کارهایی که من داشتم در اسم نویسی در مدرسه هنرهای زیبا در کنکور ورودی آن و تهیه وسایل کار و خانه و حتی خرید لباس نه فقط خودش بلکه کسانی هم که در اداره سرپرستی زیر دست او کار میکردن به من کمکهای شایانی کردند. به طوری که پس از چندی من او را نه فقط یک پسرم و پدرم که البته به من برادران لطف و محبت داشت می دانستم بلکه با هم و رفیق شده بودیم و ماها تمام دیدنی های این شهر زیبایی دنیا از موزه و تاعت گرفته تا کافه و کاباره را با او تماشا کردم به مهمانی های رسمی همراهش می رفتم و راستی که اندام برازنده صورت خوش و لباس های آراسته او مخصوصا در مجالس رسمی که فرم نظامی سورمهی رنگ یراق دار تا واکسیر بند هم می کرد لذت بخش بود. و من فخر می کردم که همراه او به عالیترین تری مهمانی های مجامع پاریس و شبنشینه های عمومی و خصوصی سفارتخانه های خارجی سر می کشیدم. به علاوه، دست و دلبازی و گاهی ولخرجی های او هنگامی که مرا به شام دعوت می کرد نمی توانست در من که از زندگی پرت و خوشم می آمد باشد. اما اینها به کنار، مهمترین خاصیت او در زندگی این بود که بی خودی جانماز آب نمی کشید. خود را درستگار درو صدیق جان نمیزد و عبا نداشت به من اقرار کند که از وقتی از ایران خارج شده دیناری از اواید املاکش را در فرانسه و در اروپا خرج نکرده بلکه برعکس تمام آن را به بانک های انگلستان و سوئیس گذاشته و حتی در بانک دو فرانس هم حسابی که نسبتا معتنابه از باز کرده است صحبت از دزدی و تفریط اموال دولتی در کار نبود جدا عقیده داشت ای که او در آن زندگی میکند جامعه ای که او به اندازه یک سر و کله از بیشتر افرادش بزرگتر است باید حیات او را تأمین کند و احتیاجاتش را برآورد معتقد بود که او از بیشتر مردم معاصر خودش نجیبتر و عصیلتر و تر و دلیلتر و کاربرتر است او را نمیتوان در قالب زندگی یک مرد عادی زندانی کرد دست او باید در هر کاری باز باشد و اگر در این عرصه منافع او با منافع مردم عادی استحکاک پیدا کرد خود را زیحق میداند که از روی نشانها بگذرد در واقع هم مردی بود را کو باجرات کاربر و قاطع. هر وقت کوچکترین خطری را از طرف رقبا و معاندین احساس میکرد سر کیسه بیخودی خود شل میشد میتوانست تماترین دهنها را هم با نقل و نبات پر کند و یقین داشت که در عرض چند هفته سر پست خود محکم و پا بر جا باقی میماند جبران خسارات کاری سهل و روزمره بود اما اگر با آجیل نمیشد را غبارا فریب داد و یا رام کرد آن وقت باکی نداشت که خشن ترین و بیرحمان ترین وسایل را به اندازد. ایمان داشت که هر کس در این دنیای آشفته چه در ایران و چه در اروپا باید مراقب کار عادیه خودش باشد. هیچ کس به فکر دیگری نیست و هر کس دقیقۀ منافع و اقراض خود را بخواهد به اسم منافع عمومی زیر پا بگذارد ابله است و قتلش واجب. در عین حال ازش کار برمی‌آید. وقتی احساس می کرد که رضاشا به چیزی علاقه من دست دیگر حساب سود و زیان آن را نمیکرد. از روی نعش احمال کاران میگذشت و مثل ریگ از جیب خودش پول خرج می کرد. تا میل و خواهش شاه را برآورد. یک بار شاه برای روز سوم اسفند یک اسب خوب خواسته بود. یک نفر از صاحب زبان سوار سه ماه در اروپا گردید و نتوانست اسبی را که مطابق میل شاه باشد به قیمتی که به نظرش مناسب میآمد پیدا کند. گزارشی به دست سرهنگ افتاد حاكی از اینکه شاه سخت براشافته و به صاحب منصب سوار و بیعرزگی او حتاكی کرده است در عرض یک هفته با هواپیما به مجارستان رفت و اصبی که متعلق به می میکاشت بود به قیمتی که به درجات گرانتر از ارزش واقعی آن بود خرید و به تهران فرستاد مخارجی که از این بابت به حساب شاه گذاشت نصف مخارج اصلی نبود طبیعی است که به سر آن صاحب منصب بیچاره‌ای که سه ماه در اروپا پرسه زد و نتوانسته بود اسب مورد پسند شاه را به قیمتی که قابل قبول اعلیحضرت همایونی باشد بخرد چه آمد گناه این صاحب منصب این بود که در گزارش خود به ستاد از های ورخری‌های سرنگش میخر کرده بود به همین طریق توانسته بود که اطمینان و احترام شاه را به خود جلب کند در عین حال از او میترسید و چون تنها کسی که ممکن بود روزی او را از هستی ساقط کند شاه بود. کینه عجیب از او در دل داشت. اما در ابراز این مطلب حتی به من هم که محرم اسرارش بودم احتیاط را رعایت می کرد. نه اینکه باقی باکی داشت و می خواست نفر خود را از او پنهان کند. در ابراز این کوتاهی نمیکرد اما به آن رنگ وطن پرستی میداد. میگفت می, می خشونت شاه در بحران کنونی جهانی به ضرر مملکت تمام می شود.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 او یک فوت بکند همه شما را آب می برد. اگر از کسی کاری برمی آید آن من هستم نه بچه مچه ها. در عین خشونت و یک دندگیی که به سرنوشت اشخاص هنگامی که پای منافع و اغراض او به میان می آمد، ابراز می داشت باز هم با گذشت بود خودش را به اندازه یک سر و کله از همه رقیبان دیگرش بزرگتر می دانست. و وقتی یکی از آنها توتعی به زیان او و داشت می چید و یقین داشت که میبخشیدش، بی اعتنایی میکرد و صاف و پوسکنده سعایتش را کف دستش میگذاشت. وابسته نظامی ایران در پاریس به شاه گزارش داده بود که سرهنگ آرام با ایرانیان آشوبگر مقیم برلن سر و سری دارد این گزارش چندان هم بی پایه نبود یکی دو بار در ضمن مسافرت به برلن برای خرید مهمات و اسلحه و کارخانه مورد نیاز ارتش با ادی از ایرانیان که هسته یک نهضت انقلابی را در برلن بنیانگذاری می‌کردند آشنا شده بود از آنها خوشش میامد و هر وقت سر و آنها به مناسبت کنگری از دانشجویان در پاریس پیدا می شد ابا داشت از اینکه که با آنها گرم بگیرد می گفت به عقیده آنها کاری ندارم اما بالاخره حرف حسابی سرشان می شود و مثل گوزفن علف چرانی نمی کنن دارن و همین مزیت آنها بر دیگران است حیف که ازشان کاری ساخته نیست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 چند روز بعد از این حادثه موقعی که با او از پله های سفارت ایران بالا میرفتم به وابسته نظامی برخوردیم که یک درجه از آرام ارشد بود تعلیمی کوچک در دست سرهنگ بود حتی موقعی که لباس شخصی می پوشید با این تعلیمی بازی می کرد مالایم زد روی شانه وابسته نظامی و به شوخی گفت: سرهنگ با بزرگتر از خود چرا درمیافتی؟ وابسته نظامی گفت: جسارتی خدمت جناب سرهنگ نکردم آرام گفت از همین یک دفعه درس بگیر و پشیمان شو گفت و رد شد. وابسته نظامی با درجه تمام سرهنگی به او راه داد و رفت و آرام هیچ قدمی به ضرر رقیب خود برنداشت در صورتی که از اش برمیآمد و می میتوانست بیاندازدش و خردش کند. نتیجه این شد که پس از یکی دو هفته سرهنگ آرام را به تهران احضار کردند و وقتی برگشت به سمت آجودان مخصوص اعلی حضرت همایونی در تمام اروپا با درجه سرهنگی و شش ماهر شدیت خرید اسلحه هم به او واگذار شد. و او مایه ثروت هنگفته خود را از این را به دست آورد. به همین جهت همه از او حساب می بردن. و حتی سفیر ایران هم به خوبی می‌دانست که سرهنگ آرام از آن ناتو هاست و باید باش ساخت. سرهنگ آرام از همان زمان از خاستگارهای پراپا قرس من بود. منتها نقشه و دلباخته را بازی نمی کر. اساسا راجب زن و و عشق نظر مخصوص به خودش را داشت او می گفت آدم باید زنی داشته باشد که با او زندگی کند در خانه همه کارش باشد برایش احترام قائل باشد بتواند با او به تئاتر و کنسرت برود و مسافرت کند چون این زنی باید بتواند پیش دو نفر آدم حسابی خودش را نشان دهد در مهمانی های رسمی همراه هم شعن او باشد گاهی از یک زن فهمیده کارهای دشواری به آسانی ساخته است که از احده هیچ مرد فهمیده و استخانداری بر نمیآید اما چون این زنی برای زندگانی کافی نیست در عین حال عشق بازی همجاز و هستی هستیست عشق فقط توی کتاب ها برای ابلهان است منطقه آدم نمی تواند با آنکه خوش میگذراند زندگی هم بکند یکی باید در خانه باشد از بچه ها مراقبت کند مهمانان را بپذیرد و تمام امور خانه را در ید قدرت خود اداره کند و مرد مجاز است هر چند وقت یک بار با زنی که فنون دلبری را در مکتب اجتماع آموخته باشد شیوه زندگی را بچشد. کمابیش از زندگی بی بار من با جوانان همسن خودم در مدرسه هنرهای زیبا بیخبر خبر بود. اما عقیدش این بود که اینها حوسبازی گذرانی است و کسی که بخواهد زن او بشود باید این مراحل را گذرانیده باشد. از این جهت خواستگار من بود که تصور میکرد من زن باوقاری هستم و می توانم گلیم خود را از آب در بیاورم من می توانم از کلیه شعون و ثروت و مقامی که او در اختیار من می گذارد حد اکثر استفاده را بکنم و کمک من در کوشش های او مفید خواهد بود تصور می کرد که من زن جا افتاد و استخانداری خواهم بود به اراده من وقتی پشتیبان دوندگی و آمال او شود دیگر هیچ قوی در زندگی نمی تواند در برابر ما مقاومت کند روکراس به من میگفت با من زندگی کنید من در این دنیای آشفته درهای بهشت را به روی شما باز می کنم هر چه بخواهید مسافرت تجمع احترام پول جواهر، خانه، پارک بیش از آنچه تصورش را میکنید و با وفاترین عشاق می میتوانند به شما وعده بدهند در اختیار میگذارم از هوسهای من نهراسید آنها دمدمی و گذران هستند شما میمانید و من وقتی قضیه گرفتاری مأمورین پست و تلگراف که نامه ها را منتشر کرده بودند پیش آمد، رئیس نظمیه را عوض کردند و شاه او را تلگرافی از پاریس خواست و ریاست کل شهربانی را به او واگذار کرد. چند روز پس از ورودش به تهران به خانه اش رفتم. لازم بود که من دیدنی از او بکنم. از تبعید پدرم خبر داشت، اما من هیچ اشارهی به او نکردم. مبادا خیال کند که من برای نجات پدرم به دیدن او رفتم. من او را خوب میشناختم و می دانستم که کوچکترین قدم را در زندگی بدون تقاضای اجر و ماز بر نمی دارد و من نمی خواستم زیر بار منت او بروم. خودش موضوع تبعید پدرم را به میان کشید و گفت این کارهای احمقانه رئیس سابق است حال حلا حضرت همایونی جوری وانمود کرده بود که اگر چند روز دیگر پدرتان در تهران میمان شهر به هم می خورد در صورتی که چرز کنم. گفتم پدرم هم علاقمند نیست که به تهران برگردد اگر باید در تبعید باشد او را بفرستید به کربلا برای شما که فرق نمی کند منطقه من از این بابت از شما خواهشی نمی کنم گفت شما امر بفرمایید ما همیشه در فرمان برداری حاضر هستیم بنده هستم که هنوز در تقاضای خود اصرار دارم پرسیدم چه تقاضایی؟ گفت همان تقاضایی که حضرت اللیه عالی خوب میدانند گفتم تیمسر شوخی میکنید، دیگر رئیس کل همه ای ما هستید و تمام دختران شهر آرزو دارن زن شما بشوند. دوید توی حرف من، بله، منتهای یک جانبه است. آنها همه مرا میخواهند، اما آنکه من میخواهمش مرا نمیخواهد. گفتم تیمسر دارید مرا مسخره میکنید. گفت شما اینجور خیال کنید. چند روز بعد تذکره پدرم را توسط من فرستاد و، تمام کارهای او را از قبیل عرض و وسیله مسافرت آماده کرد فقط از من خواهش کرده بود به پدرم بنویسم به تهران نیاید و از همانجا به عتبات مسافرت کند قرار شد که پس از یکی دو ماه مادرم هم به او ملحق شود من یقین دارم که وقتی تلفن زدم و او را به شام دعوت کردم یقین شد که میخواهم تقاضای چندین ساله او را اجابت کنم و ابدا به خیالش نرسید که آزادی یک متهم سیاسی را از او خواهم خواست تہئیه فراوان دیدم میخواستم پذیرایی شایانی از او بکنم مقصودم این بود که حداقل جواب هایش را به نحوی که شایسته اوست بدهم از هتل پالاس آشپز خواستم و دستور دادم شام حسابی تهیه کنند در مخارج به هیچ صرف‌جویی نکردم شامپانی، ویسکی، جین، لیکور آماده کردم و اگرچه نظیر هایی که او در هتل‌های درجه یک پاریس از من می‌کرد نبود اما با فصایلی که در اختیار داشتم آنچه از دستم برمی‌آمد کردم. سرشان مادرم هم حضور داشت و گفتگوهای ما از آنچه در اینگونه گونه محافل عادی و معمولی تجاوز نکرد. گاهی خاطرات فرانسه را مرور میکردیم از آشناهای مشترک ما صحبت کردیم. به مادرم شرحی در ستایش من گفت. رفتار او با مادرم در کمال ادب و تواضع بود. راجع به مسافرت مادرم صحبت کرد و خانم جانم گفت هنوز آقا نتوانست است جا و منزل حسابی پیدا کند و به محض اینکه نامش برسد حرکت خواهد کرد. پرسید تتسکر را گرفته اید؟ مادرم گفت هنوز خیر گفت خواهش میکنم هر وقت تصمیم تخاص فرمودید به بنده فقط با تلفن خبر بدهید تا برایتان بفرستم بعد رو کرد به من و گفت: « آن وقت من میمانم و خانم هیچ تا به حال به خانم والیدهتان استدعای مرا گفته اید. بله خانم جانم میداند. مادرم از خدا می این موضوع مطرح شود. گفت ما هیچ کدام حرفی نداریم. آقا جانش که از خدا میخواهد امیدوارم که خودش هم راضی شود کی بهتر از حضرت عالی؟ من خنده رو کردم به او گفتم تیم امشب تشریف نیاوردید که از من خواستگاری کنید. خندش گرفت و گفت نه اما خیالش رو می کردم. شام تمام شد. من برخواستم و گفتم حالا این موضوع را بگذاریم برای بعد بفرمایید برویم قهوه را در سالن میل بفرمایید آنجا میخواستم راجب به موضوع دیگری با شما صحبت کنم